یا قلم من من از من من خون من من تاریث در حظ من من واجه ع یا کو باکپ یابی ک در نااددم جان و تن باک ف در جان و در لن ننوی سلز خون من من تاریخ من من می تپد در نبز من ام ای آی من امواج ایام کو با کفن یا بی کفن در کفن آدم جان و تن با کفن یا بی کفن در کفن آدم جان و تن راهی ادن بارانه آدم در چمن بر دلم داغ وطن مرهمی خواهد زمان با کفن یا بی کفن با نرهای سخش شکن با کفن یا بی کفن با نرهای سخش کن گر غلم نمی از من خون من من تاریج من من تاباد در لفظ مہم ہم واجہی ایام کو ہم باکفن یا بیکفن در کفنہ آدم جان و تن باکفن یا بیکفن در کفنہ آدم جان و تن گر بیمیرم یا بےمانم بر دوشو گیرم ہر بهردین سرها فداباد سه هزارم مردم و کفن یادی کفن این خاک ما یعنی چه کن و کفن یادی کفن این خاک ما یعنی چه کن من میسازم خون من خونم من تاریخ من میت بعد در لفظ من ام واجئ ایام ای کو با کفن یا بی کفن در کفن آدم جان و تن با کفن یا بی کفن در کفن آدم جان و تن, کفن، کفن جان و تن،, جان و تن، من beggiram انتن بحر زالم مشت و چنگ کفرمی خواہد زمان تارو بایددن من من باگفل یابیگ فر من با ت جاابوز را شک کرد باگ فرفر یابیگ فر با ت یاوز خون من من من من mi ta badar naszeman Tam wodzie a ja mi kumar ba ja dar kapan dam janutan ba Ya ja bie kapan dar kapan dam janutan kure i dar del fita de chole Jaman. چون آغاب یا بلکشانی، مرزهای دیدم، با گفتن یا بی گفتن، اونها فشار دادی قم من، با گفتن یا بی گفتن، اونها فشار دادی من. یار خاله من می سداز من، پر من من تانیت من. گیتا در نبض مریم ہم واج ایام کو با کفن یا بی کفن در کفن آدم جانوتن با کفن یا بی کفن در کفن آدم جانوتن جان دها اسیر دها بے بان چشم ها سو یشب من بحر آز zam namło flocho dar ham się kan Boka pan Jobka pan pan Bardo komką fryza ma Boka pan pan Jobbika Pan Barwodo komóku fryza ma Darwa misa gazda Kumane dar A młodzie ajj با کفن یا بی کفن در کفن آدم جان و تن گر غلمن می صد از من کون من تاریخ من می در نبز من امواج ایام کوهن با کفن،, با, کفن، کفن، کفن، کفن با, کفن، با کفن یا بی کفن در کفن ها دم با کفن یا بی کفن در کفن ها دم جانو تن